الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المأسومين والله الدائمة على عدائهم اجمعين اللهم افرنا جميع المشتبين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين بعد اكل در این کتابی که این به معروف ها فازل معاصر را که به قوانین مدنی معاصر در باب معاملات و در باب بین نوشته البته عرض, عرض کردم این در اینجا در این بحث بیشتر همون هم و عمومی قانون روم باستان و بعد خمسه و عزیزی مونجر هم سه دو تا قانونه سی و اما بعد در کتابهای دیگه ایشون حتی قوانین آلمانی انگلیسی دارن اینجا نگوردن مگر ده از این اسامی رو که نوشته برگردند دیگه نمیذارم چون خیلی به اصطلاحات ایشان وارد نیستن به هر حال ایشون به اینجا رسید که این که مسئله غرق در معاملات روش حساب باز بکنیم یا نکنیم این فقط یک مسئله نیست که به ذی برگرده. این در حقیقت برمیگرده به یک وضعه فرهنگیر به یک وضعه به اصطلاح اخلاقی در شامه هگر ما به دنبال اصالات الفرد بودیم و اون روح رو بیشتر اشباع کردیم با اشباع اون روح با قرم بگیم بیاسره چون اصالات فرد میاد فقط رو فرد نگاه میکنه میگه ما فقط منافع فرد رو باید حبزو کنیم. در اجتماعی در حقیقت هیئت رحمی چیزی به نام هیئت اجتماعی نداره حالا میگید این توی جامعه رشته که یک جنسه 1000 تومانی به 50000 تا پول شده حالا زلزله شد ما خبری به این رشته اعتقاد نداریم مهمه این است که این طرف که اینو 50000 تومان پول گیر شما نمیگیرش شما این مراد ما اساتید اینشون یک توزیعی داد که در قوانین روم باستان با اولیشون مبدع سلطان و اراده و مهم اراده شخصه یا ما معادل این رو در اصطلاحات فقه اسلامی در معنای اطلاق ترازی یعنی آما ترازی که حاسب شد کسی که اجوار نکرد. گفت من این دو اصلا خیدم پنجا زادتون نگستیم از زادتون لاخره ترازی شد حالا که ترازی شد درسته, درسته. درسته. این رو در حقیقت معروف شد که این خیلی از اطلاح که ایک بحث لفظی از واقعی اقتصاد هم هست و اونا تحقیقشون برگشتش به این که فرد باشه و قدرت اراده و سلطان اراده و حاکمیت اراده فردی اون حاکمیت اراده فردی اینجا بکشن بعد ایشون گفت که دین که آمد دین مسیحی یواشاش رفتن و ارزش های اخلاقی و این منچه شد که دو مرتبه یعنی منچه شد که اون قوانه رفیت بکنن و یک نوع تاادور رو به ادارت رو در مخواهد اقتصادی و اجتماعی مراعت بشن ایشون بعد این نوشته بعد بعد, بعد هم نوشکه این در مسائلی مثل مسائل قبل مسائل ربا در شیعه اونغرد مسائل ربا که در ربا هم ترازی هست این من تن تناروزه دکتر که اسمو هندیسو گذاشته این معامله حرام این معامله باطل. ثم عادت روح الخلقیت فلسفه و اجتماع ایشون میگه بعد از غروب غستا در به اصطلاح امروز ما با تفکر با رواد تفکر لیبرالیسم و آزادی و آزادی اندیشه این آزالی اول تدسامش در آزالی سیاسی بود که منتقی شد به اسقاف نظام پادشاهی و آوردن نظام جمهوری در این ملاب چبیر فرانسه که حدود دویست و دو سی سال قبل ازاره هفته هشتاده این حدود داری از دویست و سی سال قبل دو مرتبه باز حالا این مرحله رو شده من نمی کنم بازه بحث بشم این که در حقیقا این نظام اجتماعی و نظام جمهوری و چه اساس رو دو و چه کسان رو پستهش رو این بحثی خاصت رو داشته که تفکرات مختلفی و تحلیل های مختلفی هم دارد ایشون داره سن معادت روحال فردی فلسفه‌ت و, و اجتماع باز دنیا دنیای اروپا اتا خدا هم اینا باز رفتن روی محکرهای فردی اصافتن فرد. و تصر مدهبال فیزیوکراتین یعنی اصطلاح. کسانی که به ظاهر قضیه به جهات ظاهری پایدن نظام حکومتی و بر اساس ظاهری و بر اساس همان اراده تا. مکتب فیزوکرات ها در حیات اقتصادیه در زندگی اقتصادی وساد مرد و سلطان اراده به قانون البته ایشون فیزوکرات ها که در حیمت بعد رواق تفکر لیبرالیزم میشه که این انتقال پیدا کرده یک نوع لیبرالیسم در مسئله اقتصاد، و این که فرد و آزاده هر کار خواهد بکنه آزادی داره. این آزادی داره که جنس 1000 تومانی رو 50000 تومن بفروشه. نباید جلوی این آزادی گرفته بشه. اوشان که وصاد و سلطان الاراده پر قانون دو مرحله حاکمیت اراده مطرح شد. اصطلاحا وقتی اراده میگیم در زبان فارسی به معنی آزادی میگیم، وقتی میگیم اراده یعنی آزادباش، آزادباشه که هر چی این استلاح هم عربه میشتر اراده هست از مدرپاسی آزادی هرمی هم میگهن عربه همون اراده مرادی اون استلاح قانونی و اصلاح علمی آزادی زیر بناش یعنی تحکیم و حاکمیت اراده انسان حاکمیت اراده انسان رو ازش تبدیل دیم با آزادی و این که به اصطلاح یک نوع که در های تشکیلات حکومتیش این لیبرالیسم حکومتاتی دو... لیبرالیسم تشکیل میده در بخش اقتصادی هم جلوه میکنه اختص... در بخش اقتصادی این طوریه به تعبیر ایشان مبدا سلطان حاکمیت اراده یعنی آزادی ما با این آزادی رو باز کن طرح هر چی خواست و لزوم بر اثر باز کردن این باب به نام آزادی به جای رسیدن که ما به دنبال عدالت هستیم این کالا همش رو ما ما به دنبال عدالت نیستیم به دنبال همین مبدأ سلطان اراده است فواغ ماکان قد تسعمن تحریم الغرب بسته شد مثلا دیگه قبل عامل محدود کردن گفتن که خیلی ظلم بود مثلا اگه خیلی زور بود باشه و عادت قوانین قوانین دو مرحله تعبیر خونده قاعده در گشتن به قانون روم باستان لا تعتد به الا فی بعض احوال معینه اونا دوستا دیگه خیلی فرق نمی غیر طبیعی باشه رقمیت ها به نزعه الان براتون توضیح دادم این به ساختار اندیشه قویت ستورت پنسیه در انقلاب کبیر فرانسه یعنی انقلاب کبیر فرانسوی که اومد بحث آزادی و لیبرالیسم در حکومت مطرح کرد این نبود که فقط بیاد مثلا نظام شاهنشاهی رو از بین ببر جمهوری بیاره این بخاطر بگه این تفکر اجتماعی این فرهنگ اجتماعی فرهنگ سیاسی آمد اثر گذاشت روی فرهنگ اقتصادی روی مسائل اقتصادی این آزادی و اونجا هم کشیده شد و از صور و تلقا اساس حمایت الپر و لذا در نظام به اسطلاح جمهوری اصلا در نظام جمهوری یا در نظام های شورایی اساس نظام شورایی ما تو بحث عرفت فقیق کردیم و ما اون تقریباً سازمان نظام های حاکم در جامعه بشریت تو ما همینطوره به تو تقسیم اساس تقسیم میشه یکی های شورایی یکی نظام‌های ولایی هم اینه اگر اصل عدم ولایت احد علی باشه این نظام شوراییه بهرذ این که اونا سعی کردن بین دو نظام ولایی و شورایی بخواد یک ن위 جنگ بکنه انقدر به حساب سیاسی جمع نیستن چون درست عمل نشده. نظام شورایی اساسش بر این اساسه که کسی بر کسی ولایت نداره و همه مردم و البته این در افتدای یک جور خاصی بود حالا در زمان ما که غالبا حالاً سرور می به جامعه مدنی در جامعه مدنی مراد جامعه جامعه ایست که تمام افراد اون جامعه دارای غقوق نواق باشن هیچ کس ولایت نداشته باشه و هیچ فردی نظر به فردی یعنی مذیعتی به لحاظ جنسیت مثلا نر یا ماده، مرد یا زن و به لحاظ مذهب مثلا مسلمان یا کافر یا به لحاظ رنگ یا به لحاظ فیل مثلا این با ما هست، با ما نیز، با نظام هست هیچ کسی بر هیچ کسی هیچ نه مزیتی نداشته نداشت این اصطلاعا جامعه مدنی میدین یا دار از یعنی سرور به قروع شهروندی میکنن بلکه برای این اساس یعنی میگن دیگه باید یک نواخ باشه فرق با دیگه کافر باشه مسلمان باشه زن باشه مرد باشه در جامعه مدنی باید کلا دیگه یک نواخ باشه فرق بین کافر و مسلمان این یکی از مزایاییه که اصطلاحا ها مثلا می‌گن که متأسفانه در دنیای غرب متأسفانه ما از کردیم همین حرف رو بین ابو حنیفه در دیه کافر می‌زنن میگه چون کافر در نظام اسلامی زندگی میکنه همگو gọi همه افراد باید دارای ای واحد باشه همین حرفی که الان باسم جهانبند گفته میشه در وقت پیش اون در 3000 سال قبل اون حرف رو وارد میکن الان کلیه ماکان حالا واژه بحثی میشن پس اصطلاح جامعه مدنی به اصطلاح ما به تعبیر ایشان میگه این یه جامعه ای است که صحه کردن چه در مجال سیاست و چه در مجال اقتصاد این در حقیقت حمایت فرد به تعبیرشون این مکتب اساس فردی البته در سیاست این مسئله اصالت فرد به این شکل به حساب بروز پیدا میکنه که هیچ احدی هیچ کس مثلا یک شهری مثلا 100 میلیون 10 میلیون 5 میلیون 2 میلیون هزار فر جمعیت داره هیچ احدی بر دیگری ولایت نداره حالا ولایت‌هایی که الان در جامعه ما هست یا ولایت مثلا مخبرگان یا ولایت احزاب یا ولایت فرض کنید مثلا یا ولایت مثلا تیراهای سلطنتی دید. انواع ولایت یک کسی رو این جرد ولایت داشته باشه مثلا از خاندان سلطنتی از وجواب از اشراف از احزاب الان بیشتر به حساب متأخر به اشاره به بزرگی سچین ولایت رو به احزا میگن مثلا حزب کمونیست این ولایت داره و تقسیم گره‌های اون در مقابل این حکومت ها اینا مجموعه حکومت‌ها هستند که کم نیستن الان ما نظام‌های پادشاهی داریم در زیاد داریم تمام این نظام در حقیقت یک عنوانه. تحت یک عنوان، تحت یک, یک, یک خط یا یک گروه یا یک تیره معین در بقیه به داشته باشه. در مقابل این نظام شورایی، نظام شورایی یک نظام این اشتباه نشه، پیگرد مشعره ان و بده. مشاوره هم این, این مشورته نظام نیست، نظام شورایی نیست. نظام شورایی یک نظام سیاسی اجتماعی است و اون اقامش اینه که هیچ کس بذات نداشته می‌خواد شاهان باشه، مخاطبی باشه، قاضی باشه، مخاطب باشه، می‌خواد هژد باشه، می‌خواد شاهزاده باشه، مخاط شاه باشه. هیچ احدی بر احدی ولایت نداره. تمام افراد جامعه هر واحد و احد این مبدأ عدم ولایت انعکاسش رو انتخابات. این ان انعکاسش این انعکاس مبدأ عدم ولایت چون هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت نداره اما ما خودمون با بین خودمون و در همین مکتبی که شما در زمان فرانسوی انقلاب کبیر فرانسه نوشته، فارسی میشه که تاوهای جان جاک قرارداد اجتماعی مثلا یکی از تفسیرها البته این تفسیر اول شده بحث دیگه هم شده قابل قبولیتش مشکلات سیاسی داره که اینجا نیست واسه این شو دیگه اون قرارداد اجتماعی ما میگند ما قرارداد می‌بریم ما هم دیگه که چین مطلبی باشه چه نظامی باشه قانون رو با یک قرارداد اجتماعی نوع اساس رو عقد میشه اوفق عقد جلسه شما ژن رفسور قوانین اجتماعی رو به اداره اجتماع رو بر اساس ما در عالم خود ما با اوفق کتابی هم داره قرارداد اجتماعی چاپ شده بر اساس یک نو قرارداد اجتماعی پس بنابراین این, این که میگن مثلا پس کنیم پارلمان باشه این پارلمان در حقیقت فقط میکنه این پارلمان در حقیقت اراده مردم بین این معنی. هیچ کس بر کسی بلایت نداشته من مثلا فرزم در کشترین مثل چین که یک کشتر بزرگی هم از ارمانی اکتبایی کارم دنیا هست به اصطلاح بلایت داره اما در این حالی پارگرمان هم دارن که از مردم انتخاب کردن این جمع بین انتخاب و بین مسئله بلایت و شورایی. که حالا نفیجه گریشی من نمیحا و بحث سیلسی به شون از بحث ما خالشی حالا آیا این دوتا قابل جمعن؟ اصلا قابل جمع نیستن ما این رو باید چهار تو این مرحله اصل این بودشن از چپکو در غربیه ها اصل اینه وقتی این پارلمان در غرب به این معناست که این منعکس کننده اراده فرده خود در قربه وقتی گفتیم هیچ چست و هیچ چست ولایت نداره اما اگه خود فرد تصمیم گرفت که این آقا از طرف من صحبت کن وایجا کردن که قواعدی معینی که اون ضوابط هم باز قرارداد اجتماعی است. دقیقاً اون ضوابط هم باز برگشتش به با قرارداد اجتماعی. یعنی اینا تمام همتشون اینه که هیچ قضاستی رو بالاتر از اراده مردم قرار ندن. تمام برگزیده به اراده مردم. یک چیزی بالاتر از این به نام حزب کمونیست، به نام خدا، به نام ولایت فقیر هیچی بالاتر از اراده مردم نباشه. این اراده مردم هم قامون رو معاین میکنه این اراده مردم هم اجرا رو و قامون رو به صورت پارلمان به اجرا به صورت دولت این خودش اراده مردم از کن در نظام که درادت داره ممکنه پارلمان رو بالا انتخابات رو اتخابات معاین خودش رو خودشون که دستگاهی میکنن لیکن باز اون مبلعه احلاف از, از بالا باز حضور کمونیز رو مجید به شاهر میاره نمیدارن تماماً ارازه مردم متکس بشه حال الله هست میشه بیکاره به اصطلاح شوخی بعد این بحثه که ایشان آورده وقعیت ها به نظامت و صورت و وحیث صورت الفرمسیه قامت على اساس حمایت الفرم ببینید حمایت الفرم در مجال سیاست یک جور معموم میده حمایت الفرم به تعدیبیشون یا مکتب فردی فرمگراهی یا اصالت فرم مکتب و تفکر اصابت در بحث اقتصادی ایشون تو که این بحث قرد توی بحث اقتصادی آمده که تحت تأثیر مکتب اصابت پرد گرفته و ریششن یکی اجتماعی بوده سیاسی بوده بعد سیاسی شکل جمهوریت گرفته و در بعد اقتصادیش اینجا منتقی شده که گفته قرد نبی تاثیره و اعلان حقوق الانسان این حقوق انسان دیگه نه فعال قطع صوره صوره به انقلاب کبیر فرانسه حتی تعین لحد دل الفائده و حتی تحریم القرن حتی تحریم قرن رو هم برداشتن الگاه کن که قرن حرام در اغار خب خوب، شمیدیش اروپا بیشتر یک جامعه حسابداری بود قبل از انقلاب کبیر فرانسه یعنی همین دوک ها و نُفرسو چی میگن یعنی دوسا اصرار دیگه بله خلاص میشم خدا از این که اینها های بزرگی داشتن به قول ارباب بشیگن اونها اونا اودار بود. این به اقار حتی در اونها هم اگر قدر بود اینو برداشت در هاشیش یک نکته دیگری هم اضافه میکنه یعنی چون این تحلیل بغلال سویزیکراتی رو حکومت ظاهری تحلیل دیگری هم در حاشیه اضافه میکنه یه غیر از این اصالتالتر روی در انقلاب کبیر فرانسه روش آمد کار کردن و یرک یعنی اضالکه ایزن به نزول اسعار نفر ده میگه قیمت پول پایین آمد تو ایام انقلاب کبیر فرانسه پایین آمدن ارزش پول این هم منشع شد مثلا فرسون تمنان میگوزن مثلا این یکی که زمین در میدو پول که آمد پایین شد 500 میدو اون تا غیرمتعارفی یه قیمت های قیمت طبیعی ایشون میگه چون در اون و صده ور قیمت الاوراق المانیه ارزش پول کاغذی به اعتباری آمد پایین بر اساس آمدن آماده لذا این منشاء شد گفتن این زمین خرید به 20 میلیون حالا مثلا اتفاقا قبل از یک سال ممکن قیمتش 20 میلیون بود گویا خرید بدی چون پول آماده کنید ارزش پولا گفت این هم یک عامل دیگری شد که بیان جلوتر میسن بیان اشکال نداره خرید 20 میلیون را بود اشکال نداره یعنی اون اساطر هم بعد به اصطلاح اقتصادی داشت که کارش پول ملی بود و هم بعله سیاسی داشت که مسئله نظام شمهوری بود و لر سر قانون الفرنسی ها به طبالی ایشون اعتقالش اینه فجاعت احکامه زیقتن فی باب القرم فهولای از آقال قرم جزاعن الا فی حالات معینه که اهمش هم حالت بیعه احاره حالا این من بخواستن توصیب دارم شون بحق بذاشته یک بحثی هست که گاهی اوقات گاه در جامعه یک چیزهای در اولویت قرار میگیره دولت میاد و همون یک که اولویت داره یه کمی تشدید قرار میده مثلا ممکنه بگه اگر شما ماشین خریدی فکر کنه شما اگر کتاب خریدی اگر شما جه خرید، خریدی گندم خریدی مبهونن خریدی ما چیزی نمیگیم اما زمین رو چون براش ارزش خاصی قائله مخاطب میگه که زمین انتقال پیدا نکنه میگه شما در زمین اگه قرنپاییلا کردید ما پیگیری میکنیم. و ایشون در هاشش اعتماد داره به قدیر جعال فضل فی تحریم القانون الفرنسی للغرن مثل بی الا تدخل ناپلعون از شخصی این به خاطر قوانی بود که ناپلعون در این جد راست کرد یعنی این برمیگرده به یک نوع اوضاع اقتصادی محینی که در زمانش پیدا میشه و مطالبتی به دالک لحمایت سروت یعنی بخاطر اینکه که ارزش زمین رو حیفظ بکنه ناپلون آمد این قانون رو قرار داد که جروع به اصطلاح چیز گرفته بشه. اسمش چیه؟ خرم در خصوص زمین بله یک توضیح کمی... یک شرح کوچیک هم نوشته یک دوسته تا مصدر اشاره کرده مثلا نگاه بکنیم سفر فلان ماده فلان چون این ها من در اختیار نداریم باشیم آید نگیم خودشون نگیم نگیم مرادشون چیه بعد ایشون میگه بعد, بعد از این مطلب اختلاف و نظر نراح و ایزم این اختلاف الان هم در زمان ما شده براستان میگه همیزم تو زمان ما همینطوره. این در مقارنه فیماییر بین القوانین موجوده فی اصلا رو حاضر ایشون میگه تا زمانه که ما داریم همینه فحونات القوانین به ایا المشبه قوانینی که مش اشباع شده به اصاز فرم و حاکمیت به سادگی اراده یا آزادی یک نوع لیبرالیسم اقتصادی من آزادی دارم هر را هر شی درم خواستم کشمش بعد نوشته مثل آقای خلالم دو تا دوبل قدم و خل لماتش در داخل هماهنگی متعاقد مقبوم بعد از اون میگه به عکس قوانین هستن که درش تضامن اجتماعی هست. این یعنی قوانین هستن که اون تا تعادل رو مراعات می‌کنه دیگه اسم نبرده کل قانون آلمانی و قانون سوئیسی در آلمان در سوئیس باز قوانین به عكس از قبل جمهوری می‌کنه تم نه المتعاقد المقبول منحه ای ببشه به کسی که مقبول به حمایت واسعه ازش کشتیبانی میکنه می‌کنه حمایت می‌کنه و تسوق و سوق این و تسوق منن قبل نظریه تن عامه تن بس تو نوشته بعد میگه دیگه من مردی چون از محل کار بله بعدم میگه که باز قوانی بعدی یک اشکال سقاطه دیگه داره اون وقتی چیزی رو ایشون میکنه نظریت مادیه و نظریت شخصیه به چون بحث شدیه به قرنه ما تو بحث خیار قرن وارد بحث میشین و اون اینکه که معیار در قرن رو چی ما حساب بکنیم پیشون میگه دو نظر هست یک نظر مادی از به تبدیلیشون به اصطلاح واقعگراری مثلا به یک معنی یعنی به اصطلاح نظر خارجی مثلا اسمشی میذاریده یک نظر شخصی یک نظر عمومی نظر عمومی این است که نیار در قلب اون نرخ عمومیه یعنی ما یک نرخی رو تصور میکنیم که اون تصور حساب میکنیم و در به اصطلاح اون قسمت دیگه نه حساب شخصی اون وقت ایشون مواردی رو به اصطلاح در این جهات که فرق به نظر مادی و بول خودش مادی و تئوری شخصیتی شخصی فرقهای مرمون میکنه بحث میکنه که چون الان محد کار ما نیست این در این منطور بحث باری بشین اون وقت باز یک مقابله کرده یک شرحی داده که قانون مصری که در باب قرنه اون محن فرانسیش با محن عربیش فرمو کن یه بحثه به اون کرده بله که حالا اونم باز مربوطه به کار ما نیست و این که مثلا در چه مواردی ایشون میاد و در چه مواردی به اصطلاح قابل پیگیری هست یا قابل پیگیری نیست و این به اصطلاح در انواع معاملات هم ایشون متعرض قد نشدن که اونها به طبیعت الحال از طرف ما از طرف بحث ما خارجی احس کنم که نکته ای رو ایشون در به اصطلاح حالا مقدار غم با چقدر باشه چی جوری باشه اون مقدارش باستای یک بیستون باشه خمس باشه پنج برابر باشه یا کمتر بیشتر که اون هم به اصطلاح اون هم الان ربطی به بحثی که ما داریم نداره که من میگه به خصوصیه دیگه مربوطه مربوطه به خصوصیه مذاه شرجی به شرح قوانینه و بحثی که حالا کجا اونا میاد نمیاد که من الان وارد این بحث نمیخوام بشم که رفتی به ما, به ما نحن و نداره و اینشالله این, این مباحثش حالا با کم و زیاد یا با یک به اصطلاح توضیحاتی توی مباحث قبل خیار قبل اینشالله باز متحرس شد فقط یک نکتهی ای رو ایشون به یک معنایی در اینجا داره من باز این دفعه هم گمش کردیم یک نکته خاصی رو داره که اون رو میخواستم یک توضیحی عرض بکنم راجع به اون مطلبی رو که ایشون داره بله حالا اون پیدا نشد باشه باید نسید. نه جای دیگر زید نشد بحث بابدر. این راجع به مسئله قبلی که در این مطلب. این دو تا مطلب رو ما مقدمه سان کردیم برای اینکه ماشین یک ذهن با نحوه کار ها در این قوانون روشن بشه برگردیم به اون مسئله که خودمون بودیم که تدلیس بود که قش ما اصول مقدمات هر برای بحث قش و تدلیس از صفحه 390 به بعد وارد بحث قش شده تدلیس رو ایشون بحث تدلیس رو داره ایشون هم بحث تدلیس رو از دو ماده قانونی که در دو برد قانونی در قانون فرانسه هست بله به کار برده مثل فرانسی رو اینطوری فرانسوی فرانسی رو به این صورت رو برده این نکتدلیس یعیب و رضا پس روشن شد مشکل قرم اون تاعدل ما بین طرفین رو از بین برد قرم. قرم یعنی مثلا کتابی که ده هزارتان بود به پنجه هزارتان اون رفت و ادالت مسئله غرب رف و ادالت اما میگه مسئله تدلیس نیره رو ادالت اون تا نمیره. نمیده مسئله تدلیس نیره رو رضا به این معلوم اداکانت الهیل المستعمله مت... زد المتعاقض حالا اینم توضیح میده که این هیل المستعمله زد المتعاقض از طرف متعاقض دیگر باشه یا شخص خارجی باشه این قانون مختلفی مطلقا جسی مثلا بعد اون هیل ترابان باشه به حیث انه لولاها لمارضیه یعنی ایشون مطلب دیگه نکته اساسی در باب تذویر و در باب قشینه لولاها اگر این هیل نبود ایشون به اصطلاح چیز نداره به اصطلاح ند بعد در حاشیه‌ش یک مناسبتی بحث این میکنه که آیا قش با تدلیس یکیه یا نه ایشون در حاشش میگه و یومیزون عادتا بین از قش و تدلیس که قش و تدلیس با هم فرمون این بحث تعریفی رو که کرده این رو من بعد الان یک توضیح میدم چون این یک ای مشکلاتی درست با این تحریفیشون لولاها لنا این مشکلات درست میکنه یک توضیح رو من الان حرز میکنم اینه الان شد منوزم نرزیدتر بود مرادم با هر تدریس طریقتون احتیالیه طرقون احتیالیه یک نوع راه های پرید و حیله و نیرنگه یقصد و بیه علی به عهد المتعافده و لذا این تدریس هر نمیکنه، در وقتی که عقد رو اجرا می کردن تدریس کرده باشه یا در وقت تنفیز عقد اینم تدریسی شما حال بخواد بگیم در دو, دو تدریس تنفیز عقد مثلا گفته این کنشی به شیر گاو به شما بلوخ در مینادن شیر فرسون مثلا شیر بوسفنده شیر گاو باشید تو مقام تنفیم و تو مقام تسلیم و تسلم تدلیز میکنه اما لغش فتر و احتیالیه یقصد و به ها علی و فرقه ما اگر یادون باشه وقتی روایت قشق کندیم تو بعض از روایت قشق به معنای کاری مطلق بود در خصوص بیگ نبود که در روایت هم داشت نصف و لعیمت المسلمی یک بار قش در مقابل نصف مثلا شما نستاد به مومن قشی نکنید این مومن قشی نکنید مطلقه خصوص به به نظر ولی زا اگر یاد اون باره بود مربوم ایروانی وقتی مخواست قش رو ترید بکنه چون در روایت قش اهم آمده کنید اون قشی که اینجا محل کلام ماست اون نیست که در خصوص ما این قید در خصوص معامله پس منون شدی در قامل پانسی بین تدلیس و بین قشت که این جد پر بذاشتم. پس که عزیبه های یعنی مرحوم ایروانی اگر ما تفسیر ایروانی رو بگیریم دیگه این فرقه ایشون برداشته میشه ایشون میگه قشت اهم از معامله مرحوم ایروانی میگه این قشتی که الان محل کلام هست در روایاته من قشتان ها این در خصوص معامله شاف قیدیشون برای پشاور دقیقاً چه چیزی لکیشه مثلا مردم روانی که موقع یک یک انسان صاحب نظری چطور شما وقت نگاه میکنید این حرفا در حتی در اون قرع ماها در اروپا حتی این حرفا اومده دل که خیال کن مثلا مثلا جدی پس فرض بر رو که ما میگیم با تدلیس یکیه اینی که آمده ایشون قشرو با تدلیس فرغوشته این داریم تو روایات هم داریم اما تصریح میکنه و درست هم هست که روایت من قشنا این تو معاملات و یک اصلا داره یک روایت هم داره که اگر اینسان به ما کرد آب رو محدود باشی که برای که بکره این اشکال نداره بله آب رو محدود کرد باشی به مهمان بده اونم اشکال نداره اما اگر به مهمان گفت این شیر خالصه این دروخه اون اشکال داره اون نه به عنوان قشق هست اما اون نه حرمت حر چند تا ماده‌ای هست اینکه به همستون رو هم اون از عوامل هورمونی که بده به پس این ترغیبی که ایشون در وقتی ایشون یه قوانینی اشاراتی هم داره ماده فلان ماده کلابون اش خیلی چند درصد سطحشون سر حواشی 200 سطح یا بیشترش 400 مصدر رو که اجل فلان القاضی فلان بنده فلان از این قوانینی که ایشون نوشته در فرق بین رشد این مطلب روشن بشه که اون تدریج قشری رو که ما الان داریم این شامل قشن میشه یه تدریسم میشه یکیه بعد ایشان یک نکته دیگری رو مطرح کرده به تعبیر خودش در حاشی مفصل تدریس جنایی و تدریس مدنی تدریس جنایی را تو این فیلموی خالفه زیاد دارن که یکی بعد بکنشم بردیم بزرن به که دیگه بگذرن راست هم هست این رفتیم به بحث قش نداره همین کلانه ارز کردم ما بخش تدریس ما و قش ما مربوط هست به باب معاملات و کما این که توضیح هم پیروزات توی بعد از بحث ارز کرد در مساضر قربی ها محصودی الان شما همین دو خیلی مباحث تدریس رو تو بحث بیمه زیاد آوردن چون بیمه در غرف یک فرهنگ جا افتاده است. فرهنگ دراصلا خودشون نسبت به فرد، نس آب نسبت به ماهیه چطور آب، ماهی رو آبزن زندگی میکنه چه نقشی داره؟ فرهنگ هم نسبت به ماه ها این اثر داره. ما خواهینفهایی تو اون بستر فرهنگی ماهیعنی زندگی میکن زندگی ما اینجوریه. در غرب بیمه جزو ضروریات زندگی سال در ماها نشده و بیا فیلم های سینما دی میشه درست میکنن که خیلی وقتا جنایت ها اتفاق به خاطر تصالاق در بیمه بازداردن در بیمه، کلا بذاشتن یه مقداری از قوانین غربی تو بحث تدلیس و قشق اینها رفته تو بیمه که به تعبیر عربی الان معاصر تأمین میگه تأمین در از طلاع زبان دیمه اگه لازم مثلا ما داریم بذار تأمین اشترانی تأمین در جمعه اما تأمین در از زبان عربی معاصر نه میگه که تدلیس این ازم یعنی با رزا و یه اجهار و عقبه باطلا و ادار توفت کرد شروط و سلاسه وقت ایشون شما نگاه کردین که مرحوم ایروانی اون طبیعت فقاحتی و خودش در نجب چهار تا شرط گرفت برای این که باشه و حرام باشه ایشون بگه سه تا. یک استعمال طرق احتیالیه یک نور نیرنگو و فریبی توش باشه دو تحمل و, و علا تاهاد همین نیرنگ و فرید منشعه عقد شده باشه سه و تسکره من عهد المتعاقده باید یک نفر این در مقابل چی؟ در مقابل اینکه اگر فشت و تدریس و و شخص خارج از عقد انجام داده این مثلا تحمل و علت اون انگیزه عقد و انگیزه قرارداد باشه هم و نه انگیزه انگیزه قرارداد همین باشه این رو خوب دقیق بکنید تحمل و علت این رو در اصطلاح ماها ها نیامد در تحبیرات از مثلا ایرواد نیامد یکی هم و تست رو به المتعاقده این هم نیامد لیکن زواهر عبارتشون اینه، چون که تو معامل باقیش وقتا این رو الان چون گفتم امروز میالا اموز الان همه بخونیم اینا معتقدن که ملیار در به اصلا این هیل و این هیله منشعه عقل بشه بخی ایشان این رو به عنوان انصار مادی تدریز تحبیر کرده چون چطور مرحومی روانی با این چاچه ایشون ارجاعش میده به دو انصار مادی و معنوی اونی که در غرب تدریز هست در و تدریز هست انصار مادی داره و انصار معنوی ایشون میگه انصار مادی به خاطر این که تدریز لاید کنه عادتا مجرده که است بل هو كذب مشهوب به طرق اختیاری مثلا تظاهر خرمای خوب رو با دفعه مخفیتی میکنه خرمای درو زیر میز رو خوب رو بالا میذاره به طرق احتیالیه یا یک صدوبه ها تعییم حاضر کث میخواد این دروغش رو محکم بکنه به احفاءن حقیقه عن المتعاقد این احفاءن حبیبه عن المتعاقد متعاقد شرط قیده اول در کلام مرحوم مرحومی روانی بود و شرط اول اینکه کتمان توش باشه افو اون وقت ایشون میگه خب اینجا ما می‌خوایم با ایشون بحث بکنیم و هاذه طرق تخلف و اختلاف و صور. ایشون میگه نحوه احتیال و حینه میکنه می‌کنه ظروف مختلف داره و امثله فراوان داره اون وقت ایشون مثالایی میزنه که الان در اروپا و کشورهای غربی متعارفه تو ایران هم هست دیگه مثلا من با مثال نراها فی احکام تا یه دونه ایشون دو دو دو بحثه اینا سه بحث ما یه دفعه بحث تبیح و گزاریه خودش مثلا این درست فینکسی یکی که اگه به درختار قضایریتی چیکار بکنیم مثلا قهوناک شرکت های که من با ها میگه شرکت هایی هستن جمعیاتی هستن که تتخذولها من المزارر الاعلانیه مالا یا تفقم مع حقیقا اعلانات و باستر پوسترها پخش میکنن یه شیوهی پخش میکنن بین مردم انسان خیال میکنه این درست بیگیره این طور نیست خب اینا مثال‌های واقعی ایز کلان هست. لتنقل الناس فی امر و هنال یه راه دیگه اینه که افرادی هستن یک شخصی مثل پیشوهر یا مثلا نری علامه مجلسی هم ما مثلا از مرحوم پدرم از الله مجلسی کتاب‌هایی داشتید در خونه مثلا یادگار موند اینا خیلی مثلا یک کتاب به مثلا نکاسه به شیخ انصاری حالا تو بازار هم هست انبار مثال این, این پدرم مش درس خونده. اما مثلا هست که تو بازار و یه جوری توصیف و اوصاف میخونه که اگر این اوصاف نبود این شخص کتاب رو نمیخرید یک سوال اینه من تمام بحثین رو خورده هم. میاد طرف نشون بیده که من نویه کلانی هستم من کلان هستم وزیر هستم این کاری که اوتا رئیس هست هست چیه هست هستم هست. و یک مطلبی رو مطرح میکنه اگر این شخص با با این خصوصیات نبود چونه نمیخریدیم لیکن به قیمت واقعی خریدین. بوسی کتاب ساز مقاسب مکاسبه اگر اگر من کهاله مقادشت میگیره شما نمیخریدین حالا خریدیم من سرینه این تقشیره کرد این تدریجه کرد این نسبتی که... درست بعدن این دروغ بوده نه پسر و نه بیت و نه خاروازه بوده نه جزیره تمام اینا دروغه سوال اینه که این معامله تدریسیه یا نه ایشون مخاطب میگه تدریسیه من سوالم اینه اینجا میخوام بحث رو با اینا اوایل این معروض در اقتصاد غربی میگه اینم جزو تدریس حساب میشه جزو قش اگر دقت بکنی ما در مواهز قش این بحث فریه ما این موقعات فریه اینه. ما تو بحث قش بردیم قش رو روی اینه این متعاوضه این آیا قش رو به لحاظ متعاوضه اینم میشه حساب بکنی؟ بکنیم دقیق بکنیم دم یه شما قشت و تا حالا ما قشت رو می بردیم رو متعاوضه مثلا یا خورماش مخشوش بود یا پولش مخشوش بود دلار از تقلبیتوش بود مثلا پول تقلبیتوش بود یه دفعه قل و قشت و تقلب و تدلیز تو متعاوضه ای بود این چیزیست که الان ما داریم می خونیم از این عبارت معلوم میشه که بحث تدلیز به متعاوضه ایم می‌کنه. چرا؟ چون نکته رو در باب غ در واقع تدلیس و غشت این دید که اگر این هیله نبود گفت قد بکنه؟ این عرض و قرارداد انجام نمیداد اگر این هیله نبود این هیله این که این انجام داد حیله متعاقده اینه نه حیله متعاقده این خب من نروه مجلسی هستم چینه هستم هلان هستم این کتاب فروخ این که گفتم مردموم این روانه میگه تحمل و حال تا آقد نداره ایشون داره؟ اینا ق کردن که قشق اون چیزی که با انگیزه من بر قرارداده. اگر اگر این نبود من این قرارداد انجام نمی دادم. اگر این نبود من این قرارداد انجام نمی دادم. سوال آیا این قش به احکام قشت ما در با قش به خی به خیال شدیم. خیا تبعیز اینطور. اگر بعد فهمید که این آقا نوی مربون نیست و دروغ گفته، اما کتاب خریدم کن کتابی که تو متعاوضه تاثیر تأثیر نداشته تو متعامله این تأثیر داشته همین نکته‌ای ای که ایشون از قابل پنسدی کرد که اگر این لیله نبود قرارداد اینجا نمیکن چطورت لقای ما این سید رو در واقعه عشق نیوردن یعنی اگر دخلیم تو عبارات عشق رو بردن رو متعا دهش رو در متعاقبه مطرح نکردم. اگر این عنوانی که ایشون در ذیل عبارت بانومسانسری رو برد که یحمل رو با علکت اگر این عنوان رو قبول بکنیم چرا غشتتون کنه کنه؟ چون واقعا اگر نبیه مجیسی یا گفت من وزیرم وزیرم و نمی خرید ازش من وزیرم چنه مقام دارم خرید که بعد مثلا بکنه استفاد دیگر بکنیم کتاب رو من از اینکه آن دروغ بوده کلابردار اصلا وزیرم نیست که خود همون سوال آیا خیاب قرش داره خیاب قدیس داره؟ میگه تو من کلاک سر من بودش تو تو من وزیرم هم به میگه بر افضل استفاده بکنم این کتاب رو کنیده هم از کاری بکنم این هم دروغ زرم مزمشی. وزیر نبود؟ پس این معامله باطله یعنی بطلا نصری من حق به استعداد سر که شما بحثمون تو هیف بحثاییه میشه ما هایی پردنه همین است که با آلما گفتن این قشنید نیست و تدلیس نداری رضا با یک تحمیل قابل اقتصادی درش کنید چه نکسه ای در اینجا داره که این رو ما از تدلیس خارج بکنیم این تدلیس در متعاقده رو ما از تدلیس خارج بکنیم امتای شبیهش موارد کنم اگر ذهن مواردتون باشه تو